فصل ششم تمام بالش هایی که دم دستم بود را پشتم گذاشتم. پای مجروحم را بالا گرفتم و تلفن را جلو تر کشیدم. در این فکر بودم که بهتر نیست به آشپزخانه بروم در یخچال را باز کنم و بطری کنیاک را هم بیاورم. جمله بدآوردن در کار به خصوص از دهان مادرم تنین دردناکی داشت. سر سوزنی هم سعی نکرد پیوزیش را مخفی کند. شاید تصور من بچگانه بود که در بن کسی از عدم موفقیتم خبر ندارد وقتی مادرم را می‌دانست، پس پدرم هم می لئو هم بی خبر نبود و به واسطه لئو تسوپفنر و در نتیجه تمام گروه و ماری برای ماری حتما این خبر طاقت قطور ساست. حتی بیشتر از آن که برای شخص خودم ناراحت کننده است اگر ارخوری را کنار بگذارم دوباره به سرعت به سطحی خواهم رسید که اتسونر آن را بالاتر از حد متوسط مینامد و این کار برای پر کردن 22 سالی که با جوی آب فاصله دارم کافی خواهد بود. داشتن زیربنای موفقیت آمیز شغلی تنها چیزی است که تسونرر همیشه مرا به خاطرم ستایش می کند. هرچند او از هنر سردر در نمیآورد و برداشتش سطحی و بچگان و تنها یار موفقیت است. در مورد مسائل شغلی میتوان او را فردی آگاه به حساب آورد او به خوبی میداند که من دست کم 20 سال از دست مزد روزی سی مارک فاصله دارم اما در مورد ماری وز فرق میکند بدون شک او از افت هنری و بددختی که دوچاره شده درگیر خواهد شد در حالی که خودم چنین احساسی ندارم هیچ کس ترین دنیا چون در بطن موفقیت خاص انسانی دیگر قرار ندارد نمیتواند احساس درستی در مورد خوبی و بدی مسئله داشته باشد. حالا چه این مسئله به خوشبختی و بدبختی یا به عشق و افت هنری مربوط شود. واقعیت این است که هر فرد همیشه به نوعی بیرون از شرایط فرد دیگر است. برای من اصلا مهم نیست که در های تاریک و بدبو و برای های کاتولیک خانهدار یا پرستارهای پروتستان بازی کنم. تنها ای به این مجامع مذهبی تصور مسخره ای است که درباره یک دلغک دارند طبیعی است که رئیس اتحادیه یکی از این انجمنهای مذهبی با خودش بگوید پنجاه مارک پول زیادی است و اگر او بیست بار در ماه آن را بگیرد میتواند به خوبی زندگی کند ولی وقتی صورت حساب لوازم گریمم را به او نشان بدهم و بگویم که من برای تمرین به اتاق بزرگی در هتل احتیاج دارم شاید تصور کند که من معشوقه‌ای دارم که به اندازه ملکه سباوری خرج می و وقتی برایش بگویم که من تقریبا با تخم مرغ پخته، سوب، کتلت و گوجه فرنگی خودم را سیر میکنم صلیب بر سینه می‌کشد و خیال می‌کند چون هر روز ظهر یک غذای چرب نمیخورم، گرسنگی میکشم و اگر ادامه دهم که احتياط‌های شخصیم منحصر به روزنامه‌های عصر، سیگار و بازی منچ است احتمال دارد مرا آدم حقه بازی تصور کند. مدت هاست که دیگر با کسی درباره پول و هنر حرف نمی‌زنم. هر وقت این دو با هم برخورد می‌کنند یک جای کار میلنگت هنر را یا گران میخرند یا ارزان یک بار در یک سیرک سیار انگلیسی دلغکی را دیدم که کارش 20 و هنرش ده برابر من ارزش داشت و روزانه کمتر از ده مارک می گرفت. اسمش جیمز الیس بود و نزدیک پنجاه سال داشت وقتی او را به شام دعوت کردم غذا عبارت بود از عمرت گوشت خوب سالاد و پای سیب حالش به هم خورد ده سال بود که این حجم غذا را در یک وعده نخورده بود. از وقتی جیمز را دیدم دیگر درباره پول و هنر با کسی حرف نمیزنم هرچه در ازای هنرم بدهند میگیرم و در انتظار روزی میمانم که باید در جوی آب بخوابم اما ماری طور دیگری فکر میکند او همیشه از پیام حرف میزند برای او همه چیز پیامی دارد حتی دلغک بازی های من او خیال میکند من آدمی شاد هستم به شیوه خودم پرهیزگارم و نجیب و غیره چیزهایی که در مغز کاتولیکا وجود دارد وحشتناک است. آنها حتی نمی توانند بدون ادا شراب خوب بنوشند آنها باید به هر قیمتی شده آگاهی پیدا کنند که شراب تا چنداز خوب است و چرا؟ در مورد آگاهی پیدا کردن آنها دست کمی از مارکسیست ها ندارند وقتی چند ماه پیش به ماری گفتم میخوام گیتاری بخرم و اشعاری را که خودم خواهم گفت و خودم آهنگیان را خواهم ساخت با آن بزنم از جا در رفت و گفت این کار پایین تر از شعن توست من گفتم پایین تر از شعن جوی آب کانال فاضلا است. ولی او حرف مرا نفهمید. من از تشریح یک تصویر متنفرم یا حرف مرا میفهمند یا نمیفهمند، من مفسر نیستم. در شهر بخوم روی صحنه نمایش زمین خوردم همه فکر کردن نخ عروسک که خ شب بازی من پاره شده است و من آنها را محکم در دست داشتم و خودم را با زانوی زخم دار روی صحنه میدیدم ماست بودم و میشنیدم که در سالن هم همه ی هم دردی بلند شده است. از خودم بدم آمد مستحق این همه هم دردی نبودم و سود کشیدن را به آن ترجیح می دادن. زخمی بودم ولی لنگیدنم ا بود. میخواستم ماری را دوباره به دست بیاورم و به شیوه خودم شروع به مبارزه کرده بودم فقط به خاطر آن کاری که در کتاب‌های ماری به آن طلب جسمانی گفته می‌شود